حکایت در تصانیف حکما آورده اند که کجدم را ولادت معهود نیست چنانکه دیگر حیوانات را بل احشای مادر را بخورند و شکمش را بدرند و راه صحرا گیرند وان پوست که در خانی کجدم بینند اثر آن است باری این نکته پیش بزرگی همی گفتم. گفت دل من بر صدق این سخن گواهی میدهد و جز چنین نتوان بودن. در حالت خوردی با مادر و پدر چنین معاملت کردند. لاجرم در بزرگی چنین مقبلند و محبوب. پسری را پدر وسیعت کرد که جوان بخت یاد گیرین پند، هر که با اهل خود وفا نکند، نشود دوست روی و دولتمند مند. را گفتند چرا به زمستان بیرون نیایی، گفت به تابستان چه حرمت دارم که به زمستان نیز بیایم.